بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدی یعنی از عبیات بیست و هفت به بعد موضوعش اینه که ارث بر دو یعنی انسان از دو طریق عرص میبره یکی از راه فرض یکی از راه تعصیب یا همون از فرض یا همون مشخص بودن سهم خب این افرادی که ذکر شدند میراث بران زن و مرد در درس قبلی همشون از یک طریق ارث نمیبرند. مثلا شخصی فوت کرده است یک پسر دارد خب این از راه عصبگی عرص میبرد یعنی سهمش مشخص نیست اگر تنها باشه کل مالو میبره. اگر میراست دی بر دیگه ای داشته باشه بعد از این که اون و صاحب فرض باشه بعد از این که اون سهمیه برد واقی مانده رو اون موقع این عصبه میبره پس پسر عصبه هسته میشه حالا مثالی میزنیم شخصی فوت کرده یک مادر دارد با یک پسر مادر یک خودش رو میبره باقی ماندهش میشه مال این پسر چون چرا عصبه هست پس ارث ف... بردن به فرض منظور همون صحب مشخصی هست که در قرآن اومدند که در درس این صحبه رو در ادامه بحث میگه و ارث بردن از راه عصبگی همونی هست که اگر تنها باشه کل مالو میبره و اگر نه صاحب فرضی وجود داشته باشه بعد از اینکه صاحب فرض عرصش رو برد باقی مانده رو میبره و اگر کسی بود که همین عصبه اومد اون رو عصبه کرد مثلا زمانی که شخصی فوت کرده یک پسر داره با یک دختر اینجا پسر دختر رو عصره میکنه خم اینجا لذکری مثل حذیل اون سین میشه یعنی یک مرد برابر دو برابر یک زن ارث میبره خب، این مختصری بود در رابطه با این اما شروع کنیم آبیاتو و در خلالشون توضیح بدیم و علم باندال ارث نوعانی هما فرض و تعصیبون علما قصیبا میگه و بدون که ارس بر دو و اون دو فرض و تحسیب هستند طبق تقسیم بندی که شده است فالفرض فی نص الكتاب سته فرض همون سهم در نص کتاب 6 تا هستند یک دوفوم یک چهارم یک هشتم یک سوم، دو سوم و یک شیشون پس یک دوم یک چاروم، یک هشتم یک سوم دو سوم و یک شیشون اینا تا فرض و سهم هستند که در قرآن اومدند و بیشتر از اینا نیست البته یک سوم باقی که خب اون هم جز و در قرآن البته نیومده پس میفرماد فالفرزو فی نسل کتاب سته فرزها یا سهمهای مشخص شده طبق نص سریح در قرآن تا هستند لا فرض في الارث سواها از البته فرضی جز ششتا در ارث که سریح باشد نیست البته چه هستند؟ نصف و ربعون ثم نصف رومه نصف یک دوم ربع یک چهارم سپس نصف یک چاروم کمون یک هشتون باشد و ثلثو و ستو بی شرای یک سفوم و یک ششم و نس شر. اینا شدن تا و ششمیتاس و ثلثانی و همه تمامه و دوسرم که با دو این دیگه فرضها یا نون های صابت شده تمام میشد. فحفظ فکل حافظین امامو اینارو حفظ کن که هر حفظ کننده هر حافظی امام هست. پس انسان از دور راه ارت میبره یا از راه فرض صاحب فرائز البته مشخصا اونا رو مختصرا ذکر کنم بهتر هست ما قبلا میراث برای مذکر و معنس توضیح دادیم یعنی yani در همین کتاب گروهی فقط از راه فرض ارس میبرند یعنی yani سهمشون مشخصه در قرآن کریم سهمشون مشخصه همون صاحبی که برش مشخصه میاد بعضی رو میگن عتبه اونا همشون رو شریعت مشخص نکرده اگر تنها باشند کل رو میبرن اگر همراهشون صاحب فرزی وجود داشته باشه بعد از اینکه صاحب فرض یا صاحب سهم سهمی خودش رو برداشت باقی مانده رو این میبره اونایی که صاحب فرض هستن چه کسانی هستن و اونایی که عتبه هستن چه کسانی هستن و اونایی که هم گاهی اصالاً هم صاحب فرض چه کسانی هستند و گروهی هستند که خودشون عسبه نیستند اما افرادی دیگر اونها رو عصبه میکنند مانند دختر و مانند خواهر حالا مختصرا میگویم افرادی که از طریق فرض یا یاسهم ارث میبرند شوهر زن پدر مادر پدر بزرگ پدری مادر بزرگ، چه پدری چه مادری، دختر، دختر پسر، برادر مادری، خواهر مادری، خواهر شقیقه و خواهر پدری، اینا صاحب فرضان، فرز سهمشون مشخصه. اما اونایی که از راه تعصیب ارث میبرند یا عصبه هستند، پسر، پسر پسر، پدر، پدر بزرگ، برادر شقیقه، برادر پدری پسر برادر شقیقه پسر برادر پدری اموی شقیقه ابوی پدری پسر اموی پسر شقیقه پسر اموی پدری آزاد کننده چه مرد باشه چه زن باشه اینا از راه عصبگی ارس می بردن. پدر هم صاحب فرض و هم حسبه است. با توجه به حالت مختلفش و در یک حالت هم از طریق فرض ارث میبره و هم اگه چیزی باقی ببانه عصبه هست پس به در سه حالت داره یا راه عصبگی ارث میبره یا راه صحب یا از هر دو حالت با توجه به حالت مختلفی که در جلوتر ذکر خواهد شد و بعضی از زنانی که از طریق فرض ارث میبرن سهمشون یعنی در قرآن و سنت مشخصه میبینیم که زمانی که برادر داشته باشه یا در بعضی حالات عصبه میشد از راه عصبگی از ارث می برد مانند دختر دختر میت زمانی که برادر داشته باشه خواهر میت زمانی که برادر داشته باشه خواهر میت زمانی که میت دختر داشته باشه بله البته منظور از خواهر خواهرای شقیقه یا خواهرای پدری هست خواهر مادری که ارثشون صاحب فرزند فقط اونا رو کسی عصبه نمیکنه خوب خب ادامه بحث حالا که اومد و گفت فرزها ها تا هستند در ابیات بعدی میاد این اینا رو توضیح میده که چه کسا یک دوم میبرند چه کسانی یک چهارم میبرند و چه افرادی یک هشتوم میبرند و توضیح میده چه افرادی دو سوم میبرن، چه افرادی یک سوم میبرن و چه افرادی یک ششم میبرن. اینا رو در این درس یعنی در ادامه علاوات توضیح میده که کیا هستند. فنیس و فرزو 500 افرادی از زوج و الانثا من ال میفرمادی یک دوم دو سهمیه پنج گروه هست، پنج نفر است. یک شوهر و من الالاولادی دختر و بنتو الابنی اندفق دل بنتی دختر پسر هنگام نبود دختر شخصی فوت کرده پسری داشته کن پسر فوت کرده اون پسر دختری داره دختر پسر بهش میگن اون دختر پسر یک دو فب نبره و فی مذهب کل مفتی و خاهر در مذهب هر مفتی و بعدها الاختلتی من الابی و بعد از اون خواهری که از طرف پدر است خواهر پدری یکی از مهمتری شرطان میگه چه زمان اینا این جماعتی که اینجا اسمشون برد این زنان یک دوم میبرند زمانی که معصب نداشته باشد شخص مرده یک دختر داره خب این یک دهم میبره ولی اگر شخص مرده بود یک دختر داشت با یک پسر اینجا دختر دیگه یک دهم نمیبره بلکه اون پسر که برادرش باشه اینو عصبه میکنه پس خواهرها هم اینجوری هست. گفت اند انفرادهن عن معصبی زمانی که معصب نداشته باشند زمانی که کسی که بیاد اینا رو عصبه بکنه نداشته باشند همیشه دختر رو برادرش عصبه میکنه خواهر رو هم برادرش عتبه میکنه البته خواهر و دختر هم دختر و یه هم عصبه میکنه چون ما رو عصبه داریم صبه به نفس که اینها همشون مذکرن صبه به غیر که اینا خواهرانی هستن که بهوسسیله زنانی هستن که به وسسیله برادرانشون ما عصبه میشن مثل دختران به بر برادرانشون و مثل خواهران به وسیله برادرانشون و عصبه مع غیر که اینا خواهران هستند خواهران شقیه و خواهران پدری البته اینا به وسیله دختران نیت عصبه معغیر غیر که این بحث ساده به در خلال بحث ها خوب گوش کرد شد همه اینا گرفته میشه پس پس نیرز فو پنج گروه میبردن شوهر شوهر به شرطی که فرزندی نداشته باشه زنش اگه زنش فوت کرد اون شوهر یک دوم معلوم میبره به شرطی که اون زن چه از این شوهر چه از شوهر دیگه‌ای فرزند نداشته باشد گروه بعدی دختر بود شرطی که عصب کننده نداشته بود و یک نفر بود اگر دو تا خواهر باشه سهمش فرق میکنه فقط اگه یکی بود سهمش یک دومه دختر پسر با سه شرط عصب کننده نداشته باشه یک نفر باشه و خود میت فرع نداشته باشه دختر رو پسر نداشته باشه در این حالت دختر پسر یک دوم میبره خواهر شقیقه یک دوم میبره زمانی که یک نفر باشه این خواهر دیگه نداشته باشه عصب کننده نداشته باشه میت فرع وارث نداشته باشه یعنی فرزند نداشته باشه میت اصل وارث مذکر نداشته باشه یعنی پدر و پدر بزرگ و پنجمین گروهی که یک دو می برد خاهر پدری بود به پن شرط خود میت خواهر و برادر شقیقه نداشته باشه و شرایط دیگه که ذکر شدند در رابطه با خواهر شقیقی شرطای دیگه پس رسیدیم به بیت سی یوسفون اونای رو که یک, یک دو هم می بردن در این سبیت توضیح داد حالا افرادی که یک چهارم میبرند چه گروه هستند و, و فرز فرض و زوجی معه من ولد زوجتی من قد منعه یک چارم فرض و سهم شوهر است زمانی که زنش فرزن داشته باشد قبلا خوندیم شوهر یک دوم می برد ولی چه زمانی بود؟ زمانی که زنش که فوت کرده است فرزند داشته باشد. اگر فرزند داشت، شوهر یک چارم می بشه. و ربو فرز زوج این کار معهوم الولد الزوج من قد منعه. منعه. یک چارم فرزه یا سهم شوهر است. اگر همراه با زنش فرزندی بود که اون فرزند شوهر رو از یک چ... چ... یک منه میکنه به یک چارمش می وهو لکل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدره ويكثارم سهميه زن هست چی یک نفر باشه چی بیشتر چه زمان؟ زمانی که شوهر فرزند نداشته باشه زمانی که شوهر فرزند نداشته باشه زنش چی یک نفر باشه چی بیشتر از او یک چهارم میبره پس یک چارم یا سهمیه شوهر است یا سهمیه زن است خب اینجا یک مسئله دیگه میگه اگر چنانچه اون زن و شوهر فرزند نداشته باشند ولی فرزند فرزند داشته باشند میگه این هم شامل میشه میگه و ذکر اولاد البنی نیعتمد حیث اعتمدن القول فی ذکر الولد ذکر فرزندان فرزند فرزندان پسر اعتبار دارد جایی که گفتیم جایی که ولد و ذکر کردیم چون پسر فرزند پسر همون فرزند حساب میشه و تأثیر داره پس اگر زن پسر داشت یا فرزند, فرزند داشت یا فرزند پسر داشت شوهر یک چارم میبره اگر شوهر فرزند داشت یا فرزند پسر داشت اون موقع زنش دیگه یک چارم نمیبره زمانی زن یک چارم میبرد که شوهرش فرزند نداشت یا فرزند پسر نداشت و ثمن لزوجتی و زوجاتی معلبنین و معلبناتی یک هشتم فقط سهمیه زن میت می باشد یا زنان میت زمانی که میت پسر یا دختر داشته باشه فرزند داشته باشه او مع اولاد البنین فعلمی ولا تظن الجمع شرطا یا زمانی زن از شوهرش کشتو میبره که اون شوهر فرزندان پسر داشته باشه میگه یا همراه فرزندان پسر زن یک هشتم میبره فعلمی پس بدان ولا تظن الجمع شرطن فه و این بودن رو هم شرط ندود یعنی مهم نیست که دختر و پسر داشته باشه یا چند تا دختر یا چند تا پسر داشته باشه نه شوهر یک فرزند که داشت خلاص زنش یک هشتم میبره یا یک فرزند پسر که داشت خلاص زنش یک هشتم میبره پس یک دوومو توضیح داد یک چهارم توضیح داد یک هشتم توضیح داد الان میرسه به دو سفوم و ثلثانی لی البناتی جمعن مازاده ان واحده فسمع میگه دو سفوم سهمیه دختران است زمانی که جمع باشند یعنی بیشتر از یک نفر باشن مازاده ان واحده فسمع زمانی که بیش از یک نفر باش دختر یکی بود یک دوم برد دو تا که باشند دو بیشتر میبره دو سوم پس دو سوم سهمیه دختران هست و همچنین دختران پسر و هو کذاک لبنات لبنی ففهم مقالی فهم صافی الذهنی و همچنین دو سوم سهمیه دختران پسر است این رو بفهم سخن مرا بفهم فهم انسانی که ذهنش صاف هست خوبش بفهم پس دو سوم سهمیه دختر است دو دختر به بالا دو سوم سهمیه دختران پسر است شرطی که البته رو ذکر کنم بهتر است چون ممکن است کسی نفهمد دختر، دختران زمانی دو سوم میبرند که از یک نفر به بالا باشند. اگر یک نفر میبود که اونجا خوندیم یک دو هم پس دختران زمانی دو سوم میبرند که دو نفر و بیشتر باشند. اصلا کننده نداشته باشند. دختران پسر به سه شد. یک اصلا کننده نداشته باشند. دو تا و بیشتر باشند. سه میت فرعوارس نداشته باشی. فرزند نداشته باش. اما قروه ديگي همه حس كي دو سيوون مي بلن و هو اللي فما يزيدو قض به الاحرار والابيدو دو سيوون سهميه دو خاهر وبالاترس با این چيز هم احرار هم ابيد قضاوت کردن يعني همه باله فاس هذا هذا إذا كنا لام و ابي او لاب فاحكم بهذا تصب ي نقطه ديغير توزيد دي ميگه ان يعني خاهران زماني زمان دو سهم ميبرند زماني كه از دو تا و بيشتر باشد زماني خاهران پدر و مادری باشند هذا إذا كنا لام و زمانك زماني كه شقيقه باشند يعني هم پدر و هم يا زمان خاهران پدري باشند فاحكم بهذا تصيب به این چیز حکم کن تا سخنت سواب باشه به حق باشه تا به حق برسی خب تا این جای کار اکتفاق میکنیم از این کار کار ببعد انشالله یک سوم یک شیشمو یک شیشمو بقیه مسائل رو که مرتبط با این سهمها ها هستند انشاءالله در درس بعدی خواهیم خوند